آخرین هورمونی که میخوام در رابطه باهای صحبت بکنم هورمون پرولاکتین هستش. هورمون پرولاکتین به عنوان هورمون مادری شناخته شده و مهمترین هورمون موثر در روند شیردهی است. به طور سنتی عقیده بر اینه که پرولاکتین باعث بروز رفتار تهاجمی مادر برای حفظ نوزادش هستش. سطح پرلاکتین در طی بارداری افزایش پیدا میکنه در زمان زایمان به اوج خودش میرسه و بعد از زایمان ترشوهش یک مقداری کاهش پیدا میکنه و تا پایان روند شیردهی ترشوهش ادامه داره پرولاکتین به عنوان هرمون اطاعت و تسلیم هم شناخته شده همچنین پرولاکتین باعث میشه که مادر نگرانی در قبال فرزندانش داشته باشه. و این حالت کمک میکنه که مادر حس مراقبت و شب داشته باشه و حس مادرانگی در او تقویت بشه به طوری که نوزاد جزء اولویت های زندگی او قرار بگیره و رفع نیازهای نوزاد هم در اولویت اقدامات روزمره مادر قرار بگیره جنین وقتی در شکم مادر هست مقدار پرولاکtin ترشح میکنه و میزان بالای پرلاکتین مایع آمیوتیک میتونه ناشی از ترشح رحم یا جفت باشه اما اینکه پرلاکتین چه نقشی در بدن جنین داره هنوز ناشناخته هست. نقش های اصلی پرلاکتین در روند بارداری و زایمان و پس از زایمان عبارتند از اینکه پرلاکتین هورمون اصلی در روند تولید شیر هستش و از اون مهمتر اینکه که پرلاکتین باعث ایجاد رفتارهای مادرانه در زنان میشه و همچنین باعث میشه که اشتهای مادر افسایش پیدا بکنه که کمک میکنه مادر مواد غذایی مورد نیازش رو در دوران شیردهی دریافت بکنه. علاوه بر این، بررسی‌ها نشون دادن که پرلاکتین سیستم باربری خانم‌ها رو مهار میکنه و جلوی تخمه گذاری رو میگیره و در گذشته به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از بارداری ازش استفاده می‌شد. همچنین پرلاکتین استرس مادر رو کاهش می‌ده و تحریک می‌کنه ترشوه اکسیتوسین رو. یکی دیگه از اقداماتی که پرولاکtin در بدن مادران انجام میده این هستش که سیکل خواب و بیداری مادر رو تغییر میده و همین باعث میشه که مادر راحت تر بتونه با شب های دوران نوزادی کنار بیه این چهار هورمون هورمون هایی هستند که نقش بسیار تعیین کننده ای رو در روند زایمان ایفا میکنه برای اینکه زایمان به طور مؤثر اتفاق بیفته ما نیازمند هماهنگی و هارمونی بین عمل کرده این هرمون ها هستیم هر گونه اقدام و مداخله غیر ضروری در فرایند زایمان باعث میشه که سمفونی هرمونی زایمان به هم بخوره و زایمان اون گونه که باید طبیعی و فیزیولوژیک پیش بره پیش نمیره به خاطر همینه بسیاری از زنان ما و بسیاری از مادران ما تجربه خوشایندی از روند زایمانشون ندارن چون مداخلات بسیار زیادی رو در روند زایمان دریافت میکنن و همین باعث میشه که احساس ناخوشایندی رو تجربه بکنن و به جای اینکه روند زایمان روند گوارا، دلچسب و دلنشینی باشه برای مادران روندی ناهمگون و ترسناک و باور هستش امیدواریم که با مجموع پادکست هایی که در حال تهیه هست بتونیم به مادرانمون کمک بکنیم تا اطلاعات لازم رو در رابطه با روند بارداری و کسب بکنن و بتونن بارداری و شیرین و گوارایی رو تجربه بکنن